سومین کلید سلامتی ترکیب غذایی مناسب است همین چند وقت پیش بود که پزشکی به نام دکتر استیون اسمیت که تولد صد سالگیش را جشن می در پاسخ به این سوال که راز طول عمرش چیست گفت پنجاه سال اول مراقب شکمت باش تا در 50 سال بعد شکمت مراقب تو باشد حرف حساب جواب ندارد. دانشمندان زیادی روی ترکیبات غذایی مطالعه کردند. بعضی از آنها ترکیبات غذایی را به صورت پیچیده‌ای درآوردند، اما این موضوع بسیار ساده است. بعضی غذاها را نباید با غذاهای دیگر خورد. به همین سادگی. انواع مختلف غذاها نیاز به شیوه های گوارشی مختلف دارند و بعضی از این شیوه ها با یکدیگر سازگاری ندارند. مثلا آیا گوشت و سیب زمینی را با هم میخورید؟ آیا نان و پنیر یا شیر و یا ماهی و برنج را با هم میخورید؟ اگر به شما بگویم چنین ترکیباتی برای دستگاه داخلی بدنتان کاملا مظر است و انرژی بدنتان را از بین میبرد چه میگویید ؟ احتمالا باورتان نمی شود. خب پس بگذارید توضیح دهم که چرا چنین ترکیباتی مزرند و چطور باید میزان انرژی خودتون رو حفظ کنید. هر ماده غذایی به شکل خاصی هضم شود. هضم غذاهای دار مثل برنج، سیب زمینی و نان در محیط قلیایی صورت میگیرد که در مرحله اول توسط آنزیم پتیالین در دهان ایجاد می شود. هضم غذاهای پروتئین دار مثل گوشت آجیل، تخم گیاهان و نژایر آنها در محیط اسیدی انجام می‌شود که این کار را معده با تولید اسید کلوریدریک و پپسین تنظیم می کند. و اساس قوانین شیمی دو محیط اسیدی و قلیایی همزمان نمی‌توانند فعالیت کنند چون یکدیگر را خنثی می‌کنند. اگر پروتئین را همراه نشسته بخورید در عمل هضم اختلال ایجاد می‌شود. عزای هضم نشده محل تجمع باکتری ها می شود. باکتری ها باعث تخمیر و تغییر شکل غذا می شوند و ایجاد نفخ می کنند. ترکیبات نادرست غذا ها انرژی شما را تحلیل می برد و هر عاملی که انرژی را کاهش دهد می تواند زمینه ساز بیماری شود. این عوامل باعث می شود اسیده مده زیاد شود و به تبع آن غلظت خون افزایش پیدا می کند و فشار زیادی به دستگاه های بدن وارد می شود. در این مورد می خواهم که روش ای به شما ارائه دهم. در هر وعده غذایی تنها یک نوع غذای جامد بخورید. خب احتمالا می پرسید که غذای جامد چیست؟ غذای جامد به غذایی گفته می شود که آب کمی دارد. به عنوان مثال گوشت گوساله غذای جامد است در حالی که هندوانه آبدار است بعضی ها دوست ندارند در رژیم غذایی از میزان کمتری غذای جامد استفاده کنند پس اجازه بدهید راهنماییتان کنم مراقب باشید چنین غذاهایی را با نشاسته نخورید هرگز گوشت سیب زمینی را با هم نخورید اگر احساس میکنید باید هر دو را بخورید، هنگام نهار یکی و هنگام شام دیگری را میل کنید. کار سختی هم نیست. میتوانید به بهترین رستوران دنیا بروید و بگویید استیک میخواهم بدون سیب زمینی سرخ شده به همراه سالاد و سبزیجات پخته. چنین غذایی مشکلی به وجود نمی آورد. پروتین ها را میتوان همراه سبزیجات و سالاد مصرف کرد چون آبدار هستند. ع بران می توانید مقداری سیب زمینی سرخ کرده را به همراه سالاد و سبزیجات آب سفارش دهید. مورد دیگر اینکه آیا تا کنون برای برایتان پیش آمده که صبحها بعد از هفت یا هشت ساعت خواب بیدار شوید و احساس خستگی هنوز در شما وجود داشته باشد؟ آیا می دانید دلیلش چیست ؟ آن زمان که شما خواب هستید؟ بدن شما به شدت در حال فعالیت است تا غذای نامتعادلی که خورده اید را هضم کند. این عمل هضم به انرژی زیادی نیاز دارد و هنگامی که غذاهای ناسازگار را مصرف می کنید، این عمل ممکن است تا 14 ساعت نیز طول بکشد. این در حالی است که اگر ترکیبات غذایی مناسبی استفاده کرده باشید، دستگاه گوارش این عمل را بین سه تا چهار ساعت انجام می دهد و انرژی بسیار زیادی ذخیره می شود.